که در اول مباحث اصول عملیه مطالبی رو مرهوم محقق اراغی قدس الله و سر مرموم فرمود که رسیدیم به اینجای بحث به مناسبت قبل از اصل عملی نسبت بین اصول عملیه به اما امارات رو اول متعرض شدند که نسبت رو حکومت گرفتند. خصوصا رو مبنای خودشون که قاائللا در باب امارات به تطیم کش یعنی به عبارت دیگر امارات رو چون از باب تطیم کشف میدونن پس دیگه شکی در امارات تعبدن وجود نداره شاره اون شک رو بر اگر شاره اون شکل رو برداشت دیگه جای رجوع به استثاب نیست چون استثاب بهوامش به شکلات هم غزل یقینه بشه در مثال آب کرز کردم اگر آبی چند تا کور بود و نجس شد بخون خب شما اگر روایتی آمد که این آب اگر رنگش رفت خونه رنگ خون در پاکه اگر فرض کردیم دیگه شما استثاب نمیتونید بکنیم استثاب نجست هم. چون اگر بایدانات که پاکه یعنی شما دیگه شک در نجاست نداریم اگر شک نداشتین جای استصاب نیست لاتن بازل یمینه به شک دیگه جال نمیشه چون نیشون میگه مفاد عدل امارات حجیت امارات نفی شکه و تطمیم کشف پس دیگه جای رجوع اصول عملیه نخواهد همینطور در باب اینکه اصول عملیه تنزیلی و غیر تنزیلی مقدمه این هم همین نکته نقطه هست. نکتهش به این همین طوره چون اصول تنزیلی اثبات موضوع میکنه. مثلا فرض کنیم استثاب اثبات میکنه که این آب نجست. مثلا نجست بوده سابقا الان هم نجسته. دیگه شما فرض کنیم الان به عکسش اگر باشه. استصحاب اختضاع بکنه که بله اینجا آب نجسه شما دیگه اصالات و تهارت و این آب جاری نمیکنید. بنابرای اینکه اصالتها رو جز اوتون تنزیلی باشه شما دیگه ایم تو میگین اصالتها رو چرا؟ شما اصالتها رو در که شما شک بکنین اینجا شعره وقتی میاد میگه لاتن قذر یقینه به شک شک, شک شما رو تعبادن بر میداره پس دیگه نوبت استثاله نوبت اصالتها رو نیست یا فرض کنیم مثلا همون مثال معروفی که بعدم خواهد آن من مثال های داره که فاصن شما یه گوش رو تو بیابان ببینید شما اساطر اباهه داریم برابر معروف که اباهه شیء مشروط شما بگین که شارع فرموده کل بشی اینو که حتی طعن مانه حرامون به اینه فتدعهم من قبل <تصفيق> نفسه اینا کل بشین لك حلال این شامل اینجا میشه حکم حلیت درسته اما چون در اینجا شک میکنیم که آیا تسکیه برای این گوشوار شده یا نه تسکیه حکم کنه که این گوش غیر موذکره با حکم به اسات آدَم تسقیه دیگه نوثه به اسات ال اباحه نمیرسه اسات ال حل نمیرسه نمیتونید شما اسات ال حدر جاری اصولا اصولاً لا تنقض ال یقینه به شک این در حقیقت اون روز توضیح است کینه در حقیقت مخاطب اینه اون یقین تو هنوز واقعی است لا تنقض و رضا است این میگن اون معنای کنایی لا تنقض ال به شک اون یقین رو توسعه میده تو مرحله بقا یقین داشتی که این این وقتی تسکیه نشده بود وقتی که زنده بود مثلا شک میکنی آیا تسکیه واقع شده یا نه استثاب عدم تسکیه میکنی با استثاب عدم تسکیه دیگه نوبت به اساطانه هم نمیرسه یا شما چه اساطانه جه بود این مثال حصول عملی تنزیلی بر غیرشون وقی ایشون نسبت بین این دوتا رو نسبت باز حکومت میدونه چرا چون دلیل اینجوز کل باشه ان لکه حلال حتی تعلم یعنی کلش این مجهول حتی تعلم می‌خواستن حتی تعلم این میاد میگه شما به برکت استصحاب تعلمن و حرام پس این دلیل به اصطلاح توضیح میده یعنی دلیل استصحاب توضیح میده دیگه شما به اساتید اله مراجعه نکنین چون اساتید اله در جای است که لا تعلم اینجا تعلم لاتنگوزر یقینه به شر شما می دونستید که این تسکیه نشده الان هم که شرک می کنید ابقاع بکنید بر عدم تسکیه این خلاصه نظر مبارک ایشون پس نسبت بین این دوتا نسبت بین لاتنگوزر رو شر که دلیل استثابه با نسبت کلوشه علت حلال حتی تعلم نسبت بین دوتا حکومته چون لاتنگوزر یقینه به شرک میگه تعلم شون گفت یقین رو نغز نکن یعنی بر یقین هست اگر یقین هست اونجا اختوت تا تعالی پس علم هست اگر علم هست دیگه نوبا در اصلاحات اله هم نیست دوشن شد انشاءالله این هم در این جهت استصحاب به اصطلاح در این جهتی که هست نه هم قدیق اول تقدیم بعض اصول تنزیلی یعنی بعض آخر کل استصحاب به نسبت اله قاعده طهاره استصحاب رو نسبت به قاعده طهاره مثلا در یک جایی سابقا نجس بوده شما الان استصحاب نجاست میکنید دیگه قاعده طهارت جاری نمیشه بنا بر اینکه قاعده طهارت جزو اصول تنزیلی باشه البته این روشن نیست نمیگمون حکومتش لازم نیست برای اساس اصول تنزیلی باشه بن الهدیه بن فیوجن قوی که ایشون اسات الهل رو هم و اصول تنزیلی می‌دوران انشالله توضیحاتش رو شب همین امروز اگر حسین یعنی تو امر یک توضیح عرض می‌کنیم یک مقدار کلمات در اینجا تنقیح نشده انشالله ارز عرض می‌کنیم که اساتید الهد دو معنا داره و یک معناد دو مورد داره که مجموعه سه مورد ما اساتید الهد داریم این کلمات ها رو بعد توضیح میدیم هم عبارت که ایشان در اینجا روشن بشه هم عباراتی که صفحه آینده ان شاء الله الله تعالی از کنم این تشکیزش بهتر از این ها, یعنی بهتر از این مثال ها همین مثالهایی که من زدم قاعده تجاوز با اسس ها قاعده سوق مسلم با اسس ها این مثال ها بهتر این مثالی که ایشون زده چون قاعده تجاوز میگه شما اگر بعد از رکو در حال سجد شک کردی بنابیدار که رکو انجام داده شک در رکو داری اصل علمه این این دوتا رو مثال میزد یعنی سوال در اینجاست که نسبت بینه این دوتا چیه یکی لا تنوازه یقینه به شهر داریم، یکی ادار جستهو فشک ککلیسه بشه اینجا میان بگن فشک ککلیسه بشه به منزله حاکمه برای لا تنوازه یقینه بشه چون شما اگر بخیر استثابه عدم رکوع بکنی بگیم یقین داشتم در حال قیام رکوعی نبود حالا مستثاب میکنه درست استثابه عدم رکوع چرا لا تنوازه یقینه به شهر یقین داشن و عدم رو که حالا استثاب میکنن لازم این میاد میگه فشک و که لیسه بشی این لازم گذر یقینه بشن شکش رو برمیداره به قطعه این رو اصطلاحاً از که در کلمات قدمان اصحاب و حتی اهل سنت تربیر به تخصیص میشه اونم های متأخر ما نادرن تغییر به ورود و بعضاً گفتن حکومت که مشروع همین من منوهای و منوهای اراقین ها قائل به حکومت هم بعضی ها هم از همین به اصلاح تبقیه معاصرین باز هم قائل به هم. که نسبت بین این شک با شکی که در دلیل استصحاب هست نسبت هم آمو خاصه تخصیص میتونی قد از این مثالهایی که ایشون زده خیلی روشن نیست اما های روشن هم نیست که من عرض کردم یکی قاله سوق مسلم به قیاس به استصحاب مراد استصحاب اصلاحات ع شما اگر گوش رو از دست مسلمان بگیرین شهر بکنین تبقه قاعده استثاب تذکیر اجاری میشه لیکن در اینجا یک اصل تنظیری دیگر هست و اون قاعده سوق مسلم یا یاد مسلم, سوق مسلم، اون اختزام میکنه صحت تذکیره که تذکیر شده تبقه استثاب نشده تبقه قاعده سوق مسلم شده وقت نسبت بین این دوتا نسبت بین این دوتا شهر شکی که لا تنخوذی یعنی شکه شکی که در باب قاعده سوب مسلم هست میگن نسبتشون حکومته یعنی این قاعده سوب مسلم بر اون استصاح حکومت داره ادوه این قاعده به تخصیص که الان نرسه فه امناها علامای از هران الاسحاب تکونم نر اصول تنظیری المصبت تهارت الواقعی المشروف عبارتی ایشان واضح نیست من توضیحی میدم به نظر من یک مقداری شد مرحوم آزیا خلطی شده و هر حال ظاهرن جز اصول تنزیلی نباشه، جز اصول غیل تنظیلیست اما به تقریباتی دارم اصول غیل تنظیلیش من تقریبات بشم و اینی که ایشون میگه تهارت واقعیه این نه به خاطر مثبت بودنشه نه به خاطر اصل تنظیلی بودنشه به خاطر این که حتی اخباریا ها از هم در حدایق هم داره اینا میگن لسان این دلیل کلهش این لکه تاهر به عنوان حکومت است در اون جایی که اش طهارت شرعه مثلا لا جزء لکه بی اون نجس دراز میکنه اسالات طاهر میگن تاهره میگن این اسالات تو ایشون شد اینو چون نازر بوم گرفته ایشون که اصل تنزیلی است نه این لازم نیست اصل تنزیلی و لذا ی رتبون علیها آثار طارت واقعی این اسالات طارت واقعی رو بلاغ حکومت میدونن حکومت بی این معنا. شما گفت لا صلات الا به توهور توهور گرسته. توهور من توهور. احتمالاً توهور لفظه عبری باشه که در مدینه استعمال می شده. عرب ها در لغت یهودی هایی که با اصلا تفخیم توهور می گفتن به و اما توهور بر وزن فعول حالا اون سه چار تا احتمال توش هست اون خود آبه خود خاکه. توهور یعنی تهارت این یعنی تو. لا صلاة الله به انزل نامن از سماع ما اونجا به فتح تاست یا اطرابا اهدو طهورن اطرابا اهدو طهورن اونجا رو به فتح تا بخونی لا صلات الله به طهور رو به زم تا بکن. و عمدت الاشقال این نما هو علی مبنه رجوع فی لا تنقص الی بقای المتعقن لا بقای الیقین از که باز در اینجا اجماع رو بردم که در باب استصحاب نظر به متعقنه یا نظر به یقینه و ایشون میفهمند که صحیح این است که نظر به یقینه ما توضیحاتش اینچالا عرض هاییم کرد که هر دوش درسته مشکل نداره اعتباره اینجا مشکله خاصی نداره میشه نظر به متعقن باشه. میشه نظر به یقین باشه این مشکل نداره و عرض کردیم اینچالا بعد که میاد حتی عبارات عده هم اصولی نه ه همین عبارت مشهور بقای ماکان علا ماکان این بقای ماکان نظر بومتیقن بله نظر خود ما هم اینه که شاید در نظر عرفی حقیقتن اگر استس استصحاب رو تحلیل عرفی بکنیم با نظر شاره در حقیقت یک نوع توسعه یقینه مفاد استصحاب یعنی میاد در صورت ذهنی شما تصرف میکنه اون صورتی رو که در قدوس بود بقایم برامی اون صورتی در حدوث بود دیروز دید رو دیدیم این صورت به امروز هم میکشه حقیقت و ولذا ارز کردیم حقیقت اصول عملیه کلن اینه خیلی تکرار کردیم تعامل ما با اون صورت ذهنیه هست این خیلی قاده مهمیه مثلا در کتاب اروه نیم دارم دیدیم یا نه یا حضور بحثش داشتیم فرو زیاد در علم اجموعه در عده از ما معروفه حتی بعضی مجدوگانه این فرو علم اجمالی ارگه رو با شهر چاپ کردن این هم خب خیلی فرو دقیقی ریز در چند در فرو علم اجمالی ایشان اون نکته فنی رو که من ارزم اگه یاد بگیین تمام اون فرو حل میشه اون نکته فنی اینه چون از خیلی مقدمات روی که ما میگیم با می به اصول همیشه دقت بکنید ببینید اون داده های ذهنی شما چیه و بعد چی میخواییم؟ این خیلی نقطه اون داده های ذهنی شما چیه؟ اونی که الان در ذهن شماست اینی که میگن مصبتات و اصول بجتیست نقطه شمیه مثلا شما میگنید پار سال ذهن بود داده ذهنی شما اینه حالا ما خواهیم بگیم که امسال ذهن بچه داره مثلا نه این با داده ذهنی من نمیخوره این, این نقطه اونی که به داده ذهنی من به اون موجود، محلوبه شما باید در اصول عملیه همیشه نسبت بین مفروض و مطلوب رو حساب بکنی میگید شما در ذهنتون این بود که فارسی زنده است توش نه خوابیده که حالا زنده بود ازدواج این یک صورت دیگریه توش شخابی بود که اگر زنده است مثلا بچه دارن شده یا بچه نداره مثلا یا اگر مثلا اسات عدهانی ولی از گفتین پس که ازدواج هست. هیچ از اینها رو شما اثبات بکنی می‌گید پارسال زنده بود، سال زنده است. حتی لهدیه مثلا پارسال بود، امسال بود، مثلا میشه 23 هزار هم داره. اینا اون نقطه ظرافت فنی شوشن شد، شو در باب اصول شما همیشه اون سوبر ذهنیه رو در نظر بگیریم طبق اون سوبر ذهنیه ترتیب آثار ببینید. یک قتلخو توی یکی از این دو انا افتاد. صورت ذهنی شما اینه. چی می‌خواد بگیم؟ می‌خواد بگیم اجتناب بکن. که من میدونم با آمدن قطعه خون اشتناب آمد نصبادش که علا حد انصبای کموزه از کرده اما مثلا بگیم حالا که این دو قطعه خون آمد پس این است که ملاقات با خون کرده این نمیتونه بگیم چون این ملاقات با خون کرده من این رو به خود مثلا فرسوی دوتا انار خالی بود یکیش توش آب ریختم یکیش توش هم ریخته. بگیم صورت ذهنی شما اینه توی یک انا آبه توی یک انا خمره دست دارو یک انا معایه. بگیم پس من اگر کسی این رو خورد حد خم برش جایی بگیم نه این صورت ذهنی برای شما در نمیاد. این از کجا در رو این صورت ذهنی براتون چون اونجا دلیلش عنوان شرب خمره من شربلت هم فجده دو لذا در باب اصول دا اصلا نکته فنی اصولم همینه و این که با مثلا بگیم اصلا هست یا نیستن؟ مثلا فرض کن اساتید برائت چون اصل اولاً هست ان شاء الله عرض کردم اساتید برائت درنما و اون اصل ثابت نیست این خب خیلی اثر داره ما اساطه برائت رو دیگه از این معنا میگین جزء اصول نگرفتین دقیقاً این یک مسائل بسیار اساسی است در باب اصول و نکته اساسیش تو اون فروه علم اگر وقت کردید نگاه بکنید دنبال این نکته باشیم. اون محفوظه اون سوار محفوظه ذهنیتونو حساب بکنیم. اون مطلوب رو حساب بکنید ببینید میتونید این مطلوب رو از اون مطلوب در بیارید و ممکن است شما در جایی نتوانید این مطلوب رو از اون مطلوب در بیارید و خیلی این نکتهی ای که مرمومه آزیا فرمودن مرموم این درست در میاد است شما نتونید در بیارید اما شارع میاد تبد میکنه لذا همیشه این نکته رو خوب دقت بکنید که خیلی حائز اهمیت در تمام موارد اصول مثلا این آقا داره در این هوا تصرف می‌کنه این محفوظ شماست صورت تو داره تو این هوا تصرف می‌کنه مطلوب ایشون مالک هواست می‌گین تلازم نداره اون که بتونه تصرف قسری هم باشه ببینید مطلوب مفروض شما این شخص مثلا یک مارموی میاد بس این عبارام پوشیده، این کتابم باشه. میگه این صورت محفوظ. مطلوب ایشون مالک کتابه. میگه نه تلازم ببینید. دائما می ببینید دو تا چیز هست. یک یک تلازم واقعی ببینون اونها باشه، این میشه اماره. تلازم واقعی نه چیزی که باشه، میشه اثر عملی. مثلا حالا بیم با مثال میخوام بگم. اگر گفتی ملکیت یعنی یک کسی دلش تصرف اصلا ملکیه خوب اگر می‌بینین یک ماه عوارو پوشیده پس این واقعاً مالکه اصلا از اگر به چی شد؟ اگر ملک یعنی تصرف دیدین آقا ما هم می‌پوشه پس این قاعده اصل نیست قاعده میشه چی اماره ملکیه این نکته های فنیش اینه میگید ملکیت چیه؟ میگید تصرف یکی از لوازم ملکیته خب ملازمه نداره ممکنی کسی چیزی دوزیده باشه قصد کرده باشه و تصرف رو کنه در اینجا بعد ما به تو من مخواهم راه کلیش رو بگم راه کلیش اینه اگر بین اینها تلازم واقعی نبود شما میخواید این تلازم رو ابداع بکنید همین که ابداع کرده میشه اصل این نکتهش اینجوریه یک اوغلا در سیر اوغلاییشون این ابداع رو کنه میشه اصل اوغلایی اوغلا در ابداعش گیر داشته باشن شار ابداع رو کنه میشه اصل وقت اصل شرگی را باید بیونیم شاره به چه نهلی ابداع کرده اینا تمام محاصل یعنی ما تو بحث اصول عملیه تمام بحث ما نقطه فرنیش اینه اون نقطه اساسی فرنیش اینه دقیق کردید دائما اون صور مفروضه کن مثلا میگید بله ما اگر یک صورت ذهنی از سیزی داشتیم در مرحله بقا میبینیم خود. اگر این اغلایی باشه اصلاحا میشه اوغلایی که بلیفرم اغلایی از به نظر ما اگر شعره انبیاء اگر ثابت نشد شعره تصرف جدیدی کرده شاره به همون مقدار اغلایی امزا کرده اینی که من ارز کردم این مسائل و اصول عملیشون در قوانی جدید در پارلمان ها ملاحظه بکنیم به همین نقطه است. یعنی در پارلمان یعنی تصریب میکنن مثلا برای جا که مسالح و مفاسد جدیگه باشه نکات خاصه میارهایی که اصول قرار میدن اینا میان بین, بین یک به اصطلاح مفروض با یک مفروض ایجاد رابطه میکنن یا در اوف رابطه نیست یا اگر هست مبهم مشکوک ضعیف رابطه خیلی توضیح داده نشده میاد انگیزه قانونگذار میاد تصرف, می تصرف به این رابطه رو محکم میکنه میگه اگر دیدی کسی در چیزی تصرف میکنه این معنیش این که اون میشه قاعده یاد. اگر از مسلمان ولذا طبیعت این اصول هم بیروز ما ارز طبیعت تمام این اصول که ابداعیه طبیعت زرف جهله لذا دائما اصول عملیه دائما محدودن به علم بخلاف اگر در لسان دلیلی هم علم بخلاف آمد این دلیل است اینکه این که این حکم ظاهری است مثلا بعضی تصور کردن کل این لکه حلال حتی تعالی و انه حرامون به اینه این دلالت میکنه بر حلیلیت واقعی رد این تصورم رد این تصورم واضح شد اگر حلیت واقعی بود باید باید با کلش این حلال حتی یا حرم حشاره اینجوری بود اما چون گفته حتی تعلم انه و حرامان میشه حلیت ظاهری میاره هم بروش هر جا شما در لسان دلیل غایت علم رو دیدید به حکم ظاهر بود حکم واقعی نمیشه باشه چون حکم واقعی به علم و جهلمن عوض نمیشه بقیق حکم واقعی من بدانم یا ندارم، عوض نمیشه حکم واقعی تابع که هل شاره مثلا یک کلوشه اللکه حلال حتی یا حرم ها شاره اگر گفت حتی یا حرم ها شاره از قاعده هل واقعی اما گفت حتی تعلق یعنی هلیت ظاهریست این نکات فرنیست که در باب اصول مراعات باید بشه بله ایشون میگه با عبدتال اشتال انما تو این که بقای متعقن یا بقای یقین و رای الله فعلستانی که ما باید مختار ما ارز خواهیم کرده هم بحث. هم بقای متعقن از عبارات و اصولی ها در میاد هم بقای یقین در میاد و از کنیم انصافا هر دوش هم عرفیه بقای متعقن هم عرفیه بقای یقین هم عرفیه نه نیست لیکن اونی که است با استثاب و هر دوش هم برمان استثاب قرار دادن و هر کدام هر کدام نکته خاص خودش داره که ان شاء الله ارزش پیدا در بحث. بله. که الا ما فلا اشاله في تقديم الاستصحاب على القاعده المذکوره، مرادش القاعده قاعده طهارت. ان الله من در همین امر لسانی یک توضیح راجع به فرق بین اسالت و قاعده ارزم می‌کنم. صاحبان هم گفتن باز در مرحله ترکیب می‌کنن. به نظر ما خوب بود این اصولی ها بین قاعده و اصالت فرق میذاشن. مثلا قاعده طول هل، اصالت طول هل این فرق بود. من قبول دارم نه این حالا بگیم هیچ کس فرق بگذارد چه آنی کتابشون چاپ شده شنان که چاپ نشده که صحبت کردیم من بگیم قاعده ای هل عبارت از این است که متصدی حکم هلیت اشعا به اناوین هل اولیت الواقعیه بشه که به قاعده واقعی بشه. بگیم شارع مقدس همه چیز رو حلال کرده واقعا هم حلاله هر چیزی هم با عنوان مثلا سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن حلاله مثلا به عنوان مثلا کشیدن عنوان کشیدن نه به عنوان مجهول قاعده هل رو این بگیم یعنی بگیم هر چیزی و خداوند در این طبیعت در اینجا در کره ماه مریخ هر جای که بشر به دست باشه شارع مقدس اون رو حلال کرده تا اینکه شک بکنید اون رو حلال این اصطلاحا قاعده هله البته ایشون مرادش یک معنی نیست من دارم میگم اشتوانشون مرادش حسالت قاعده هل بیان هلیت واقعی اشیارست که من چند دفعه عرض کردم خب بگیم بشه همه بشه هم محله در تحقیات محنونایینی فقاله این رو ذکر کرده برانونم ولی قولی تالا اهل لکم ما فلعرز جمعی ما آیه بنام اهللک ومافل الارض زمین یا ندید که باشیم توی قاعده هل بحث میشد توی خلغلکوما بدر اشتباهی است که مقرر ان به الله به شعر نوانی اجل خلغلکوما مافل الارض زمین ما اهللکوما مافیا اهللکوما مافل الارض زمین یا اهل اینا نیست یا ما جعل علیکم فی دین من حرج ازش قاعده به بحث نفی حرج رو از این درورد ما آیه دربار ما جعل ما جعل علیکم به صيغه معلومه و بعضی آثار هم داره که انشاءالله در محل خودش. الان که ماکان پس ما یک قاعده هل داریم، یک اصالت هل داریم. اصالت اله یعنی شاره حلیت قرار داده برای اشیایی که مجهول الحلیه با وصف مجهولیت. که میشه قاعده ظاهری. لذا اصالت اله میشه ظاهری، قاعده اله میشه واقعی. اخی چون تعبیر به قاعده طهارت کرده ان در همین بحث برده به عرض کرد اگر ما همین تفسیر رو قبول بکنیم بگیم قاعده طهارت و اصل طهارت قاعده طهارت اینه یعنی هر چیزی رو واقعا خدا تاهر تعریف کرده این قاعده طهارت اصل طهارت اینه که شک داریم برای ما تاهره حالا چرا نهیشو به موضوعی بشه نه شو حکمیه این دوتا با هم فرق نمی‌کنه چون تعبیر به قاعده طهارت کرده من سابقا توضیح دادم بدنشاد تو کلمات استاد چون مقدمات استاد همشو نخوندی اونجا میشه توضیح خوندید ما قاعده طهارت نداریم ما قاعده ای به نام یعنی هر چیزی فی نفسه به عنوان ال اولی خدا رو طاهر خلق کرده هر چیزی شاره حکم به طهارتی فی نفسه ما چین قاعده ای نداری بله اصل تو طاهر داره یعنی هر چیزی که مشکوکه حکم به طهارتش کرده تاكيد اینجا برما آزیا تقدیم الاستصحاب علی القاعده البته این که قاعده ها رو نداریم اینا قائلان ندارن که نداریم اما اینا کلمه قاعده رو به اصالت به کار میبرن با کلمه اسابت رو به قاعده به کار میبرن تو کلماتشون که مراجعه میکنید این دو تا جابجاش شده جا شد. شد. جابجاش قشونه مرادش این نگی جابجاش من است... اعتقاد اینه که ای کاش در کتب و اصولی و فقهی ما این دوتا از هم جدا میکردیم یک اصالت الهی میگذاشتیم یک قاعده الهی یک قاعده طهارت میگذاریم یک اصالت طهارت اسرائیلی خوبی بود اجتباح پیش نمی مثلا ما الان قاعده طهارت نداریم چون هیچ چیزی ثابت نیست که هر چیزی رو خدا من به عنوانه هر چیزی که خلقت کرده به عنوان پاک کرده مثلا پاکه حکم به طهارت بله ما قاعده رو داریم حالا همین خلقت مافرد از جمیعن هر چیزی داریم از کل مطلق از الاخری ادله خاص خودش داره که هر چیزی فی نفسه و به عنوانه مثلا سیگار کشیدن به عنوانه نه به عنوان اینکه که مجبوره سیگار کشیدن به عنوانه فرسو نبیدون بعضی از انواع مثلا بازی ها مثلا این بار مثلا بگیم در روایت در نعمله که جز آلات قمار باشه بگیم اینها یا فوتبال مثلا اینا به عنوانه حلاله اگر به عنوانه حلال شد میشه قاعده اگر به عنوان مشکوک حلال شد میشه اسالت اسالت البته قاعده فقط در و حکمی جاری میشه تو تو شبوات موضوعی معنی نداره اما اسالت الحل در هر دو جاری میشه اسالت الحل هم در شبوات موضوعی جاری میشه هم در و حکمی جاری میشه طبعا حالا من ان شاء بعد عرض خواهم کرد همونی که ما الان دلیل داریم قاعده حل رو میشه اثبات بکنی اسالت الهل در شواهد حکمی را آقایون گفتن را که انصافا همین گفت البته اینجا نداریم گفت فقط وعده شد در ادله براءت در ادله اسات الهل میاریم عرض خواهیم کرد که ما اسات الهل در شواهد حکمی نداریم روایتی که دلیل بر باشه اما اسات الهل در شواهد موضوعیه داریم و یک مشکل داره به هر حال اسات الهل در موضوعیه فی نفسه بد نیست و در شواهد و حکمی هم احتیاجی نیست با وجود قاعده خیلی بهش احتیاج علایه حاله به مناطل حکومه کل امارات، حیث و انهو من جهر تکفلی هیل و قاعد یقین سابق مصبتون لحصول و هیل معرفه غایتش علم، فی قاعدتی الهلیت و تهاره از کنم به قاعده کرده هر دوش مراد اصالته سموراد مرادیشون قاعده نیست نه که مرادیشون که یعنی با اصطلاح بنده ایشون با اصطلاح درست به کار برده ما به نظرم که اگر به جای قاعده تعبیر اصالت می‌کرد بهتره و خیال نکنیم مرادیشون از قاعده حل اون حل واقعی است چون اصلا هل واقعی با علم و جهل نیست ایشون چی میگه میگه لهصول ما هو و هی المعرفه چون در اونجا عنوان این کل شیء الا که حلال حتی تعلم تعرف عندنا یا کلوشه این لکه نقیف حتی تعلم انا و قدره ما این مرادشت معرفه اینه چون غایت و عمرده ما ارز کردیم در هر جا که غایت علم به خلاف باشه میشه اصل ظاهری قاید کتش اینطوره، پس مراد مرون و آی خویی نتیار کن آزیا و ناینی و دیگرا اینا که این نوشن قایدت الحل از تهاره مرادشون به این استلاحی که من عرض کردن اینا مقاید بینست یعنی اصلا متعرضن خیلی کالا مقاید بشنن من معتقدم اگه این کار بیکرم خیلی عباره تر بود اینا با همدیگه خلقی نمیشدن اصارت با قاعده هل اصارت التهاره با قاعده تهاره پس فی قاعدت الهلیت و تهاره کماف الامارا غیر ان الفرق بین همه هو تکفل و دلیل الاماره دلیل اماره نفی شک و الغا احتمال خلاف دلیل اماره نفی شک میکنه شک رو کلا بر داره دا از کردیم البته مرحوم عازیاد ندیدم یادم نیست نمیشتم باشم تا که مرحوم از میرزا ناینی از زبانه شاگرداش مرحوم بوجنید هم همین میفرمودن تاسفش بیشتر نیست لا احد منه لا لا زهره فتشکیف میای روی عنا صفاتونه ایشو میگه این لسان کاملا واضحه که نفی شکه نفی شک به احتمال الغاء احتمال خلاف ایغن به خلاف دلیل حرمت نقض حرمت نقض یعنی دلیل استصحاب حیث و انهو نازرون الى ابغایل یقین سابه من اصل شک شک هنوز برقراره و منحان ره الجهه یکون ال استصحاب برزخن بین اصول و امارات این معروف عبارت که استصحاب یک جهت اماریت داره عرض کرده ام حتی مثل محرومه استاد قدس رو استصحاب رو اماره میدونه اصلاحشون برزخ گرفته. مشبوره بین آقایون جز اصول میدونن و نقطه هم اینه که از زمان شیخ که عرض کردیم در اصطلاح ما یعنی در روایات ما و در فقه ما و در اصول ما تقریبا ابتدای این مطلب از زمان پدر شیخ بهاییه این مسئله استثاب از زمان ارز کردیم استثاب در شباط حکمی کلیه که محل کلام میشه در اصول از همون قرم اول و دوم مطرح شده بلی در مباحث فقی من توضیح شهرستم یه فکرانه اما از قرنهای چارم و پنجمه اینها تو مباحث اصولی آمده من همون سرمونزا داده دیگر هم داره. اما در شیعه این اصلشون سنی ها که اونها مطرح کردن اما در شیعه از وقتی که مطرح شد همون راهی رو که سنی ها رفتن رفتن شیعه چه مثبتن، چه نافی از زمان مرحوم شیخ بهایی تا شیخ بهایی که این رساله عقل طهماسبی رو نوشت چون اون پادشاه صفویه که طهماسبی داشت که سلطان هسه وسواسی بود رساله نوشت برای که این وسواسش برداره این خیال نکنه که استصحاب مثلا حرف اصولیاست چون ذوق اخباری داشت ایشون استصحاب رو با روایات اسفا کرد از اون زمان در اصول شیعه استصحاب جزء به اصا روایی سا این یک تغییر در فقه شیعه و اصول شیعه داده شده دقت میکنه البته این نکته رو خوب دقت میکنیم. در اصول اهلسان نزبخ که آنه ببتن استصاف در شباهات و حکمی حجته همون حدیث پیغمبری یه حدیث پیغمبر ما هم داریم که بعض وقتا شما نشستین خیال میکنه خدا نکده حدثی از شما صادر شده از ظرف هموندن نکنه بر وضوع خودش هست نرز نکنه. تا اسم صوتا او یجد ریحا اینو ما هم داریم این تعبیر ما باید. اینا اون روایت رو اون روایتی که در باب همین این اینم هم شاهد قرار دادن برای استصحاب در شواهد حکمیه از همین اشتباه نشه و حدیث زراره در همین مورده که من قفل بر رجل مثلا نشسته بود و قفلت کرد و خوابش برد و شر و خوابش برد نه امام فرمودند که کن تعالی یقین پیدا کنه علایق یقین ولیس درو اد که تن گزلی یقین ولی تن این اشتباه نشه روایات اهل سنت این این حدیث رو به همون موردی که از رسول الله ما دارن اهل سنت توی اصول آوردن ما هم این روایت داریم در فقه داریم که حتی یک لغت شدید هم داره. لغت عبدالله ابن بوکه رو عبدالله ابن بوکه رو باشه ایا که ان وضوع هم حتی تسم اصاوتن اتجه داری هم تقت میکنیم اما اصحاب ما از اون حکمی که در وضوث به استثاب کلی مراجعه نکردن اون مورد خاص در با وضوث شرفتی به استثاب در شما در حبومیه داره دقت میکنیم ما سونیا ادهش و سنیام هم سونیا ادهشون و مراجعه ادهشون نه آقا مون چه داره این موضوع خارجیست است و بقای بر تهارت اونی که هم و حکمی کلیه است چرا افیق با داره؟ دیداره اصحاب ما این حدیث باب استصحاب رو از رویت زراره رو در اونجا اصولی های ما گفتن نه اینکه مثل سونیا تصور بکنن گفتن کلام امام اطلاق داره. درسته فرنه کان على یقینم موضوعه فرنه که کنت على یقینم موضوعه ولا تنقذر یقینه به شک لیکن الفلامه ما یقین مال جنسه نه یقین به وضوع موضافن این که در روایات اصحاب ما سر دو روایت دیگه هم از زراره هست محسانه که در شک در رکعاته اونجا هم لا تنقذر یقین به شک به کار برده شد لذا اصحاب اصولین ما آمد هم گفتن اشکال نداره ما از این روایت ولو موردیه رجوع بکنیم به باب استصحاب در شؤون روشن شد اشکال اخباریان ان شاء روشن شد اخباریان اشكالش مولا محمد بن استرابادی هم حرفش همینه که این روایت موردیه این فعل نه کن کُن تعالی موضوع موضوعت ولیس علی تحقق یقین گفتن یقین یقین موضوع وجود رو یعنی اعلان همون بحثی که در سنیا داشته متاسفانه بعد از این در ده دهم توی ما هم آمد اخباریا مطرح کردن و گفتن این روایت اصلا ربط به شواهد حکمی نداره موضوعات خارجی است اصلا هیچ ربطی به شواهد حکمی نداره این لذا اگر دقت کنید در مثل فرسان رسائل یا آیه یا دیگران زنویینی تمام بحثشون اینه که وراتر باذل یقین به شک یه قاعده التکازی کلی است به باب وضو یا نماز باشه این تمام دعوایی که اخباری با اصولی کرده چون ادهی از اصولی به استثاب وجود کردن در شباط حکومی اشکال اخباریا این بود و طبعا هم وقتی که اصولی دو مرتبه علبه پیدا کردن منون و این بهوانی و بعدی ها دیگه جاریه بر تفکرات علموه شیعه استثاب شده استثاب در شباط حکومی گفتن جاری میشه تمسط کردن به همین نکتش اینه که اینا گفتن تعبده چون از روایات گرفتیم تعبده. چون تعبده، معنای این تعبد این نیست که شما شک رو بردارید. اصل شک موجوده، لكن شارع تعبده برمی میگه شما به یقین باش. دقت کردیم؟ و لزوم اینا قائل شدن که استصحاب جزء اصوله از اون طرف، اونا نمی‌دیدن که ما یک ارتكاز خارجی هم داریم. مثلا شما دیروز رد شدین یک محلهی بود امروز به شما یک محله زرزرش رفت تو زمین خیلی طبیعیه برای شما دیگه این متعارف ما هست چه استثاب میکنیم یک اده جزء امارات گرفتن اونایی چه جزء امارات گرفتن؟ اونا قاعدشون اولن و یلحق و شعب العمل اغلبه یعنی غالبا شما در سیره خودتون در زندگیتون در ارتکازاتون ارتکازات باید از اموریست که شما یاد میگیریم باش برخورد میکنیم بعد مثل لایه لایه توی اون مخزن حافظه بستا نگهداری میشه در این ارتکازات شما دیدین مثلا 90% مواردی که بود بعد باقی بود ببینیم 90% درستن. از این یک نوع حالت زن پیدا میشه که هر چیزی که بود باقیه پس اگر کسی رفت دنبال اینه که از علم و بالهدوس یوجه و با بقا، این میشه اماره هرکی رفت دنبال این که نه این زن اعتبار نداره شارع تعبد کرده میشه اصل مرموم آزیاب ادهی از رسولی استصحاب رو معتقلن یک جنبه برزخی داره هم یک کمی جنبه عماریت داره هم یک کمی جنبه اصلی داره دقیق یدید و ارز کردیم که مرموم آخویی اصلا سماحتا اختیار فرمانید که اماره است استثاب عماره است تو امارات تفصیل قائلا یکی ده از امارات جنبه حکایت دارن ده امارت اماریت استثاثاب رو به که جنبه حکایت نداری چرا توضیح داشته بر فیقون برزخن بین اصول و بین امارات یا به شوخی معروف ها رو به استثاثاب هر امارات و هر اصول میگن فی این نهون من جهت انحفاظ شک ولی احتمال بله فی موضوعی کان شبیه هم اصول و یقدم عليه الامارات به نحو الحكومة و من جهت اختزاعیه لبیان بقایل یقین سابقه این دقت کنید یه استصحاب مختزی یقین سابقه ما اینشان ها ارز کرد استصحاب خود همون یقین سابقه توسعه یقین سابقه این اشکال تصور آیون اینه اختزاعیه لبقایل یقین سابق کان شبیه هم به الامارات و یقدم الاسار الاسول شرعیه و الاغریه و و ازن مقام القطع المعخوض فهل موضوع طریقاً الامو تعلقی فی باب شهاده البته در باب شهاده محل بحث معروفی اینه که قارن مقام میشه و من دالکه نقونه نهو یجوز و شده به بالملکیت الفعیه مقتدر استساق و اینلم یجوز دالکه لنفس الحاکم فی حکمه لعدم کونه مثلیهی من الموازین المجعوله استصحاب نباید باشه باید یا اماره باشه یا باید حرف باشه قسم باشه و انحصار میزانیه اندیشه به بیگناد و ایمان و اقرار فتدبر حالا به هر حال این مطلب ایشان تموم شد ما فر وارد هم دوم میشن که اشاراتی پیش کردن ان شاء الله فردا اولا اصل مطلب ایشان ای این متقابل کی به این طول و تفصیل این 13 روزی خوندیم و دیگران منابع خویشم دارن همینطور هم دارن همی فقط بهشون استثاغ به امارت میدون بلا بقیه مطالشون آیا این مطال هستن درست یا نه و واقعا نسبت بین و اصول و شیر باید نسبت به با امارات و اصول اصول تنزیلی و قیل تنزیلی اصول تنزیلی و از آمد هست انشاءالله فرقه توضیح میبین معنی بقیه مطال انشاءالله و سال الله و علیه محمد و آله